اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من داء في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين به هیچ جنبندی در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهده خداست و او قرارگاه و مکان دفنش را میداند همیه اینها در کتابی روشن است. و هو اللذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يبل وكم أيكم أحسن عملا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 مگر کسانی که صبر کردند و کارهای نیک انجام دادند آنان برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است فلعلک تارک بعض ما یحا الیک و ضائق به صدرک ان یقولوا ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل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 ام یقولون افتراه قل فأتو بعشر سور مثله مفترایات وادعوا من استطعتم من دون الله این کنتم صادقين آیا می این قرآن را از خود بافته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 من کان یورید الحیات الدنیا و زینتها نوّفی ایلم فيها فِيهَا وهم فيها لا یبخصون کسی که زندگانی دنیا و زینت آن را بخواهد پاداش اعمالش را در این دنیا به طور کامل و تمام به آنها می دهیم و چیزی از آنها کم و کاست نخواهند شد اولئیک الذین ليس لهم في الآخرة إلا النار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 اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ اولئك يؤمنون به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 ولی کن بیشتر مردم ایمان نمی آورند و من اظلم من, من افترا علی الله کذبا اولائی که یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد ها اولائی الذین کذبو علی ربهم و الله على کسی ستمکار تر است از کسی که بر خدا دروغ می‌بندد. آنان روز قیامت بر پروردگارشان عرضه می‌شوند و گواهان می‌گویند اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. هان لعنت خدا بر ستمکاران باد. الذينا يصدون عن سبين الله و بغونها وجههم باخرات هم كافرون همان کسانی که مردم را از راه خدا باز میدارند و آن را کجب من منحرف میجویند و آنان به آخرت کافرند.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 اولئیک <تصفيق> الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون اینان کسانی هستند که به خودشان زیان زده اند و آن چه برمی بافتند از نظر آنها گم شدند لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ بدون شک آنها در آخرت از همه زیانکار ترند الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا اِلَى رَبِّهِمْ اُولَئِكَ اصحابُ الْجَنَّةِ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 هل یستویانی مثلا افلا تذکرون مسئله این دو گروه مانند کور و کر و بینا و شنواست آیا این دو دروس یکسانند آیا پند نمیگیرید؟ ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه این لكم و به راستی ما نوح را به سوی قومش برستادیم و به آنها گفت همانا من برای شما هشدار دهنده آشکار هستم اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا الله اِنِّي اخاف عليكم عذاب جز الله را نپرستید همانا من از عذاب روز دردناک بر شما میترسم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل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 ما برای شما فضیلتی برخود نمی بینیم بلکه شما را دروغ گومی پنداریم قَالَ قوم قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ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 آیا میتوانیم شما را به پذیرش آن اجبار کنیم در حالی که شما از آن کراهت دارید و یا قوم لا اسالكم عليهما لا ان اجري إلا على الله و ما انا بطاردی الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ ربهم رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ قوم من بر رساندن این دعوت از شما مالی نمی طلبم.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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قوم گفتند ای نوح به راستی که با ما جدال كردی وزیاد هم جدال و بحث کردی پس اگر از راست گویانی را که به ما وعده می‌دهی بیاور قال انما یاتیکوم بالله ان شاء وما أنتم بمعجزین نوح گفت اگر خدا بخواهد آن را برای شما می آورد و شما از آن نتوانید گریخت. ولا ينفعكم نصح إن أردت أن لكم إن كان الله يريد أيكم هو ربكم وإليه ترجعون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 و اوحی الی نوح انهو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن انهو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن خلا تبت اس بما كانوا يفعلون از قوم تو جز آنهایی که ایمان آوردهاند دیگر هیچ کسی ایمان نخواهد آورد پس بر آنچه کردند غمگین مباش و الفلك الفلک با ولا و وحینا تخاطبنی في الذين ظلموا انهم مغرقون و اکنون به دیدگان ما و به وحی ما کشتی بساز و درباری کسانی که ستم کردند با من سخن مگو که آنان غرق شدنی هستند و یصنع و کلما مر علیه ملع من قومه سخروا منه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 پس ما نیز شما را مسخره خواهیم کرد همین گونه که مسخره میکنید فسوف تعلمون من یاتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم پس به‌زودی خواهید دانست چه کسی عذاب به سراغش میآید که خارش سازد و عذاب جاودان برچه کسی وارد خواهد شد. حتی اذا جاء امرنا النور نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل ان حالت هم شلون ادامه داشت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 جزء دیگی اندکی همراه او ایمان نیاوردند و قال ارکبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها ان ربي لغفور رحيم نوح گفت در آن کشتی سوار شوید حرکت آن و توقف آن به نام خداست همانا پروردگارم آمور زندی مهربان است و تجری بهم فی موج کل جبال و نوح ابنه و کان فی معزنی یا بنای ارکب یا ارکم معنا و لا تکم مع الکافرین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 صومال الوم من امر الله الا من رحم وحال بینهما الموج فکان من المغرقین گفت به زودی به کوه پناه میبرم که مرا از آب حفظ کند نوح گفت امروز هیچ نگهدارندی در برابر فرمان خدا نیست مگر کسی که خدا به او رحم کند و ناگاه موج در میان آن دو حائل شد پس او از غرخ شدگان گردید و قیل یا ارب بلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و الامر واستوت على الجودي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 دوری و هلاکت باد بر گروه ستمکاران و نادا نوح ربه فقال ربی این بنی من اهلی و این وعدک الحق, الحق و انت احکم الحاکمین و نوح پروردگارش را نداداد پس گفت پروردگارا همانا پسرم از خاندان من است و بیگمان گمان بعدی تو حق است و تو بهترین داورانی قال یا نوح انهو لیس من اهلک انهو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لك به علم انی اعظك أن تكون من الجاهلین فرمود ای نوح همانا او از خاندان تو نیست بیگمان او عمل غیر صالحی است پس چیزی كه به آن علم نداری از من مخواه من به تو اندرز میدهم مبادا كه از جاهلان باشي قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين نوه فت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 و اممون سنمتعهم ثم یمسهم من نعذاب علیم گفته شد اینو به سلامتی از سوی ما و همراه با برکتهای فراون بر تو و بر امتهایی که با تو اند فرودایی و امتهایی نیز هستند که به زودی آنها را از نعمتها بهرمند سازیم سپس عذاب ناکی از سوی ما به آنها خواهد رسید تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا من قبل هذا این اینها از خبرهای غیب است که آن را به تو ای پیام بر وحی میکنیم نه تو و نه پیش از این آن را نمیدانستید پس <pans> صبر کن بیگمان گمان عاقبت از آن پرهیزگاران است وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ و ما به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم گفت ای قوم من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 و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و گناه روی نگردانید قالو یهود ما جئتنا ببینت و ما نحن بتارکی الهتنا عن قولك وما نحن بتاركی الهتنا عن قولک وما نحن لك بمؤمنین گفتند ای هود برای ما دلیل روشنی ای و ما به خاطر گفتار تو معبودهای مان را رها نمیکنیم و ما به تو ایمان نمیآوریم إِنَّ قُولُ إِلَّا اَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ما چیزی جز این نمیگوییم که بعضی از معبودان من آسیبی به تو اند حود گفت همانا من خدا را گواه می گیرم و شما نیز گواه باشید که من از آنچه شریک خدا قرار می دهید بیزارم من دونی فکی دونی جمیعا ثم لا تنظرون غیر از او پس همگی برای من نقشه بکشید آنگاه مرا مهلت ندهید انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابه الا هو آخذ این ربی علی صراط مستقیم من بر الله که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم هیچ جنبند ای نیست مگر آن او گیرنده پیشانیش است بیگمان پروردگارم بر راه راست است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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُو بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا هم, هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ و هنگامی که فرمان ما فرا رسید حود و کسانی که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خیش نجات دادیم و آنها را از عذاب سخت رهاندیم و تلک عاد جحدو بی ربهم و عصو رسلهو و اتبعو امر كل جبار عنید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 حان بر آد قوم هود دوری به هلاکت باد و الی ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إلي إن ربي قريب مجيب أبسوا قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت اي قوم من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 گفتند ای صالح پیش از این ما به تو امید می داشتیم آیا ما را از پرستش آنچه نیاکان من می باز می داری؟ و به راستی ما از آنچه ما را به سوی آن دعوت می کنی سخت در شک و تردید هستیم قال یا قوم این كنت على بينه من الرب واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيت فما تزيدونني غير تخصير قلت اي قوم من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 این ماد شطور خداوند است که برای شما نشانه است پس بگذاری دش در زمین خدا بچرد و هیچ آزاری به آن نرسانید که عذابی نزدیک شما را فراگیرد فعقروها روح ف قالت متفیداری ک ذالک وعد غیر مکلوب. پس آنها آن ماده و را پی کردند آنگاه صالح به آنها گفت سه روز در خانه هایتان گردید و بعد از آن عذاب خواهد آمد این وعده است که دروغ نخواهد بود فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يومئذ إن رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ العزيز پس چون فرمان عذاب ما فرا رسید صالح و کسانی که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خیش از آن عذاب و از رسبایی آن روز نجات دادیم بی گمان پروردگار تو همان قوی و پیروزمند است و اخذ الذين ظلموا صيحت فاصبحوا في ديارهم جاثمين و کسانی را که ستم کرده بودند، صیح ای فرو گرفت. های خود بر روی افتادند و مردند. کَأَلَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ چنانکه گویی در آن دیار نبودهاند، آگاه باشید که قوم سمود به پروردگارشان کفر میورزیدند هان بر قوم سمود دوری و حلاکت باد ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام لبث لَبِ جاء بعجل حنی به راستی فرستندگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند گفتند سلام ابراهیم نیز در پاسخ گفت سلام پس طولی نکشید که گوسالی بریان آورد فلن را لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه قالوا لا تخف اننا ارسلنا الى قوم لط بس چون دي دستونشان بسوي آن نميرست و نميخورند به آنها گمان بد برد و در دل از آنان احساس ترس کرد فرشتگان گفتند نترس بی شک ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم و امراته قائمه فضحکت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بی ومن و وراء اصحاق یعقوب و همسرش سارعی استاده بود پس از خوشحالی خندید انگاه او را به اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادیم قالت يا ويلتا اليد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لا شيء عجيب صار قلت اي وای بر من آ من میزایم در حالی که پیر زنم و این شاهرم نیز پیر است براستی این چیز عجیبی است قالوا اتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد فرشتگان گفتند آیا از فرمان خدا تعجب می کنی؟ رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل بیت باد همانا او ستوده بزرگوار است فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته یجادلنا جادلنا فی قوم لوط پس چون ترس از دل ابراهیم بیرون رفت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 يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود اي ابراهيم عزين سخن بوغزر که به راستی فرمان عذاب پروردگارت فرا رسیده است و مسلما عذابی بدون برگشت برایشان خواهد آمد و لما جاءت رسلنا لوطن بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا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 قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وقوم او شتابان بسوی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 قال لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِیِ اِلَى رُکْمٍ شَدِید لوت گفت کاش در برابر شما قدرتی داشتم و یا به تکیه ما کمی پناه می بردم قَالُوا يَا لُوتُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ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 فرشتگان گفتند ایلوت ما فرستادگان پروردگار تو هستیم آنها هرگز به تو نخواهند رسید پس در پاسی از شب گذشته خانواد را از این شهر ببر و هیچ یک از شما روی برنگرداند جز همسرد که به او خواهد رسید آنچه که به آنها رسد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 وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ محيط و قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم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 بقیت الله خیر لكم این كنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیر اگر ایمان داشته باشید باقی گذاشته خداوند برای شما بهتر است و من بر شما نگهبان نیستم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 گفتند ای شعیب آیا نمازت به تو فرمان میدهد که آنچه را که نیاکانمان میپرستیدند رها کنیم یا آنچه را میخواهیم در انوالمان انجام دهیم بیگمان تو مردی برد بار عاقلی هستی قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینت من ربی ورزقنی منه رزقا حسنا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 این يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم کن ببعید با قوم من دشمنی با من سبب نشود که به شما نیز عذابی برسد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 سپس به سوی او باز گردید و توبه کنید همانا پروردگارم مهربان و دوستدار است قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و لنراك نرا کفینا ضعیفا ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا معزيز گفتند ای و عیب بسیاری از آنچرا که میگویی نمیفهمیم و به درستی که ما تو را در میان خود ناتوان میبینیم و اگر احترام قبیله نبود مسلما تو را سنگسار میکردیم و تو نزد ما قدر نیستی قال يا قوم ارهط اعز عليكم من الله واتخذتموه ورائاكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط شعيب گفت اي قوم من آیا قبیله من نزد شما گرامی تر از خداونده است و فرمان او را پشت سر خیش انداخته اید بیگمان پروردگارم به آنچه انجام انجام میدهید احاطه دارد و یا قوم اعملو على مکانتکم عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیر و من هو کاذب و ارتقبو اینی معکم رقیب و قوم من شما به روش خودتان عمل کنید من هم به روش خود عمل می کنم به زودی خواهی دانست چه کسی عذاب به سراغشان می آید که رسوایش کند و چه کسی خود دروگوست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 و چون فرمان ما فرا رسید ای و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خود نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند سیه ای فرو گرفت پس در دیار خود به رو افتادند و مردند که ان لم یغنو فیها الا بعدا لی بعدت چنانکه گویی هرگز در آن دیار نبودند آگاه باشید دوری و هلاکت باد بر قوم مدین همان گونه که قوم سمود دور و هلاک شدند ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین راستی موسا را با آیات خود و دلیلی آشکار فرستادیم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 و اطبعه في هذه لعنه ويوم القيامه بسرفد المرفود و در این دنیا و روز قیامت لعنتی به دنبال دارند چه بدعطایی است که به آنها داده شد لالك من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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّك و ما زادوهم غیر تطبیب و ما به آنها ستم نکردیم ولی کن آنها خود بر برخیشتن ستم کردند پس هنگامی که فرمان پروردگارت فرا رسید معبودانشان که به جای خداوند میخواندند پس چیزی از آنان دف نکردند و آنها را جز حلاکت نیفزودند وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه، إن أخذه أليم شديد و انچنين است مجازات و گرفته پروردگارد هنگامی که فرو گیرد و مجازات کند آبادیها و شهرها را که مردمش کار باشند بیگمان مجازات و گرفت او دردناگ و سخت است این فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الاخره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 و ما نؤخره إلا لأجل معدود و ما آن را مدتی مؤین به نمی اندازیم یوم یأتی لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي و سعيد. روزی بیاید که هیچ کس جز به ازن او سخن نگوید پس بعضی از آنها بدبختند و بعضی دیگر خوشبخت فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي لهم لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ اما کسانی که بدبخت شدند پس در آتش دوزخند برای آنها در آن ناله و فریاد است خالدین فیها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ان ربك فعال لما يريد در آنجاودان خواهند ماند تا آسمان ها و زمین باقی است مگر آنچه پرورد گارت بخواهد، بیگمان پرورد گارت آنچه را که بخواهد انجام دهد. و آمّالذین سعد فی الجنة خالدين فيها خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب غیر مجذول و اما کسانی که خوشبخت و سعادتمند شدند پس جاودان در بهشت خواهند ماند تا آسمانها و زمین باقی است مگر آنچه پروردگارت بخواهد است قط نشدنی فَلَا تَكُفِ مِرْيَةً مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ و انا لموفوهن نصیبهم غیر منقوس پس از باطل بودن آنچه اینان می‌پرستند در شک مباش آنها نمی‌پرستند جز همان گونه که نیاکانشان از پیش می‌پرستیدند و مسلما ما نصیب آنان را بی کم و کاست خواهیم داد ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضی بینهم وانهم لفی شك منهم مریب و به ما به موسا كتاب دادیم پس در آن اختلاف شد و اگر فرمان پیشین پروردگارت نبود قطعا در میان آنان داوری میشد، و همانا آنها در این قرآن سخت در شک و تردید هستند و این کلا لما لیوفینهم رب که اعمالهم اینه بما یعملون خبیر بیگمان هر کدام چون بر انگیخته شوند پروردگارت پاداش اعمالشان را قطعاً به طور کامل و تمام خواهد داد زیرا که او به آنچه می کنند آگاه است فاستقیم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر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 وَإِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ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 این الحسنات یذهبن السیئیات ذالک ذکرال ذاکرین و ای پیامبر در دو طرف روز و ساعتی از شب نماز را برپادار بیشک نیکی ها بدی ها را از بین میبرند این پندی برای پند پذیران است واصبر فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ اجر الْمُحْسِنِينَ به ای پیامبر صبر کن پس بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را زایع نخواهد کرد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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى و اهلها مصلحون. به ای بیانبر پروردگارد چون نبود که شهرها و آبادیها را به ظلم نابود کند در حالی که اهل آن نیکوکار باشند وَلَوْشَا ربك لجعل الناس واحدة ولا يزالون مختلفين پروردگارت میخواست مردم را یک امت قرار میداد ولی آنها هموار مختلفند اِلَّا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجن والناس اجمعین مگر کسی که پروردگارت بر او رحم کند و برای همین آنها را آفریده است و سخن پروردگار تو محقق شد که مسلما جهنم را از همه جن و انس پر کرد و کلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين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 الف لام را تلك آیات الكتاب المبين الف لام را این آیات کتاب روشنگر است اننا <الف> <است> ازلناه قرآن عربی لعلكم تعقلون همانا ما آن را قرآن عربی نازل کردیم شاید شما در نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا ایلیک هذا القرآن و كنت من قبله لمن الغافلین ما بهترین داستانها را با وحی کردن این قرآن بر تو می کنیم و مسلمان تو پیش از آن از بیخبران بودی از قال يوسف لعبیه یا ابت اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین به یاد آور هنگامی را یوسف به پدرش یعقوب گفت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 این الشیطان للانسان عدوم مبین یعقوب گفت ای فرزندم خواب خود برای برادرانت بازگو کن که برای تو نقشه بدی بیگمان شیطان برای انسان دشمن آشکار است وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتممها على أبويك من قبل ابراهیم و اصحاق این ربک علیم حکیم. و این گونه پروردگارت تو را برمیگزیند و از تعویل احادیث می‌آموزد و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می‌کند. همان گونه که پیش از این بر اجدادت ابراهیم و اسحاق تمام کرد یقینا پروردگارت دانای حکیم است. لقد كان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین بیشک در داستان یوسف و برادرانش، برای سوال کنندگان نشانه و عبرت هاست اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة إن ابانا لفي ضلال مبين هنگامی که با خود گفتند یوسف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 یخلو لكم وجه ابیکم و تکونو من بعده قوما صالحین یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی دور دست بیفکنید تا توجه پدرتان فقط به سوی شما باشد و بعد از آن افرادی صالح باشید قال قا منهم لا تقتلوا يوسف في الجب بعض كنتم یکی از آنها گفت یوسف را نکشید و اگر میخواهید کاری انجام دهید او را به چاه بیاندازید. تا بعضی از كاروانهای رهگذر او را برگیرد قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون و آنگاه نزد پدر آمدند و گفتند درجان تو را چه شده است که ما را بر بربرادرمان یوسف امین نمی شماری در حالی که ما خیر خواه او هستیم اوصل هم یا ویلعب و, و له لحافظون. فردا او را با ما به صحرا بفرست تا از میبه ها بهره برد و بازی کند،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 و از این میترسم که گرگ او را بخورد در حالی که شما از او غافل باشید قالوا ان اكله الذئب ونحن عصبة اننا اذا لخاسرون. گفتند با این که ما گروهی نیرومند هستیم اگر گرگ او را بخورد براستی انگاه ما زیانکار خواهین بود فلما ذهبو به و اجمعو ان یجعلوه فی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 در حالی که آنها نمی دانند و, أباهم يبكون و برادران شبانگاه گریان به نزد پدرشان آمدند قالو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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون و پیراهان او را با خونی دروغین برای یعقوب آوردند او گفت چون این نیست بلکه هوای نفس شما کاری را برای شما آراسته است پس کار من صبر جمیل است و بر آنچی میگویید خداوند مدد کار من است وجاءت سياره فارسل واردهم فادلادل قال يا بشر هذا غلام واسره بضاعه والله عليم بما يعملون و کاروانی فرار رسید و پس آنها آب آورشان را فرستادند و او دل خود را در چاه انداخت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 وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. و پسرجام او را به بهای اندک چند درهم فروختند و در باری او بیرغبت بودند. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَأْنَسَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. ولما بلغ اشدّه اتایناهو حکم و علم و كذلك المحسنین. وقتی یوسف به مرحله بلوغ و کمال قوت رسید به او حکم و علم عطا کردین و این چونین را پاداش میدهیم و راودته هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت و قال معاذ الله إنه ربی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 بیگمان او عزیز مصر سرور من است جایگاه مرا گرامی داشته است مسلما ستم کاران نمی نمی‌شوند ولقد همت به و همما بها لولا الله برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين و به راستی آنزان قسته او کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش ندیده بود قسته نمی‌کرد این چون این کردیم تا بدی و فحشا از او دور سازیم بیگمان او از بندگان مخلص ماست وستبق الباب و قدد قمیصه من دبر و الف یا سیدها الباب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 وشهد شاهد من أهلها إن كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین یوسف گفت او با اصرار مرا به سوی خود خوانده است و در آن هنگام شاهدی از بستگان آن زن شهادت داد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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كيدكم پس چون عزیز مس دید که پیراهن او از پشت پاره شده است گفت این از مکر شما زنان است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 همانات تو از خطاکاران بوده ای وقال نسوت فی المدینه امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبين.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 فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم پس چون همسر عزيز سخنان مکرامیزشان را شنید کسی را به دنبال آنها فرستاد و آنها را دعوت نمود و برای آنها مجلس فراهم کرد و به دست هر کدام چاقویی برای بریدن داد و به یوسف گفت بر آنان بیرون شه پس زنان چون او را دیدند بزرگش یافتند و دست های خود را بریدند و گفتند پناه بر خدا این بشر نیست این جس فرشته بزرگوار نیست قالت فذالکمن الذینم تننی فیه ولقد راوه عن نفسه فاستعصم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 و اگر آنچه را که به او دستور می‌دهم انجام ندهد، قط زندانی میشود می‌شود و مسلماً خار و زبون خواهد بود. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم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 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پس پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنان را از او بازگردانید بیگمان او شنوای داناست ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بعد حين. سپس بعد از آنکه نشانه های پاکی یوسف را دیدند تصمیم گرفتند تا مدتی او را زندانی کنند و دخل معه السجن فتیاد.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 نبیعنا بی تأویله اینا من المحسنین و دو جوان همراه او وارد زندان شدند یکی از آن دو گفت من خواب دیدم ام که انگور برای شراب می فشارم و دیگری گفت من خواب دیدم که نان بر سر حمل می کنم.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 ذالک ما مما علمني ربي انی ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرتهم کافرون یوسف گفت پیش از آنکه تعام شما را بیاورند و تناول کنید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 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكننا اكثر الناس لا يشکون. و از کیش کانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم این از فضل خدا بر ما و بر همه مردم است ولی کن بیشتر مردم شکر نمیگذارند. یا <تصال> <tap> صاحب ایسی جنی ارباب متفرقون خیر امی الله الواحد القهار ای رفقای زندانی من آیا خدایان پراکنده بهترند؟ یا خداوند یک تای قهر. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها سمیتموها انتم و آباد الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعمدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكبر سرن لا شما به جای خدا چیزی را نمیپرستید مگر نام هایی را که خود و بنیاکانتان به آنها داده اید خداوند هیچ دلیلی بر اثبات آنها نازل نکرده است فرمان روائی تنها از آن خداوند است فرمانداد است که جز او را نپرستید این است دین راست و اوستوار ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. يا یا صاحب السجن جن اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اما الاخر فیصلب فتأكل الطیر من رأسه ای الامر الذی رفقای زندانی من اما یکی از شما آزاد می شود پس سرور خیش را شراب خواهد نوشانید و اما دیگری پس به دار آویخته می شود آنگاه پرندگان از گوشت سر او خواهند خورد امری که درباری آن از من نظر خواستید چون این مقدر شده است وقال للذي ظن انهو ناجی منهو مذکرنی عند رَبِّكَ فانساه الشيطان ذكر ربهی فلبث في السجن بضع سنین.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 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَأَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنِّي و پادشاه گفت همانا من در خواب هفت گاو چاق را دیدم که هفت گاو لاغر آنها را میخورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه دیگر را خشک می بینم. ای بزرگان در باری خوابم نظر دهید اگر خواب را تعبیر میکنید. <تصال> این ها خواب و نحن اینها خوابهای آشفته و پریشان است و ما از تعبیر خواب های پریشان آگاه نیستیم.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 پس مرا به سوی جوان زندانی بفرستید یوسف ایها الصدیق افتنا افتينا في سبع بقرات سمان ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعل ارجع الى الناس لعلهم يعلمون چون نزد يوسف آمد گفت یوسف ای مرد راستگو در باری این خواب که هفت گاو چاق هفت گاو لاغر آنها را می خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه دیگر خشک برای ما نظر بده تا من به سوی مردم باز گردم شاید آنان با خبر شوند قال <سؤال> تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون يوسف گفت هفت سال پي در پی زراعت كنيد پس آنچه را درو کردید، جز اندکی که می بقیه در خوش اش باقی به گزارید. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَمَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ سپس بعد از آن هفت سال سخت قهتی می آید که آنچه را برای آن سال ها زخیره کرده اید می خورید جز اندکی از آنچه که برای بذر ذخیره خواهید کرد ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه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 فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللتي قد طعن أيديهم ربي بكيدهن عليم او را نزد من بیاورید پس چون فرستاده پادشاه نزد او آمد یوسف گفت به سوی سرورت بازگرد پس از او پرس ماجرای زنانی که دست های خود را بریدند چه بود قطعا پروردگارم به نیرنگ آنها آگاه است. قَالُوا مَا خَطَبُكُم إِنْ ذَرَوُا يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ